ضرورت اجازه پدر در نکای دختر تا که حدی است انتونان پدر در عقد نکای نارایتی دختر راضی باشد عقد قابل برقرار شدن هست یا نه پدر اگر دختر به سن بلوغ رسیده دختر به سن بلوغ رسیده خودش اختیار خودشو دارد برای انتخاب همسر به شرطی که در انتخاب کسی که همکوف و مصابی با اونها نیست انتخاب نکند اگه چنین شخص رو انتخاب کرده که در حق فسق دارد این دختر حق داره انتخاب کند، در آیات زیادی از آیات قرآن کریم به این اشاره شده است که فلا تعذلوهن یعن که این ازواجهن مانه نشیگی اینها ازدواج بکنه و همسران خودشان کسانی انها پسند اند و یا حدیث چندین آیه در این مورد هست حتی تن کیا زوجن غیرهو تا اینکه ازدواج دیگر بکرد نسبت نکا به خانم داده شده است. در نزد امام شافی و بقیه میگن دختر بدون اجازه پدر نمیتونه عقد بکنه اونها استدلال میکن از یه حدیثی که معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنو دختر خواهرش طلاق دادن وقتی خواهرش طلاق گرفت دوباره خواهرش خواست که پی اول بره و هم توافق کردن ماقل ابن یسار بوده حالا من نمیذارم که دوباره تو ازدواج کنی با شوهر اولیه تی آیه ناظرشو فلا تازلو حنن ینکینا ازواج حنن که شما معنی ازدواجونها نواشی ونا میگه نگاه که اگر نکاح با دست خود خانومی بوده فسرپ پیش برادر بر خاصگاری آمدن احناف که میگن جایزه احناف جواب میگن که اگر نکاد دست برادر بود الله نمیگفت که شما معنی نشید پس نکاد دست برادر نیست اون دخالت کرد اما اللہ رب العالمین دخالتور رد کرد پس حق تصمیم گیری دختر داره که برای خودش تصمیم بگیرد اما شرایط همون هستند که باید این شرایط را رعایت بکنه و شخصی صالح که مساوی و گفت باشند عقد بکنند چون حدیث دیگر دارین احق به نفسی ها من ولیه که خودت خانم به نفس خودش حق دارتر هست از ولیه برای نکای خودش اما اگر دختر دوشیزه هست و نابالغ بیوه باشه دست هر شرایط بیوه بالغ بیو باشه اختیار داره، اما اگر نابالغ بود به سن بلوغ نرسیده بود اختیار این نکا دسته پدر هست پدر یا پدر بزرگ، چون ولایت قهری دارن اما اگر پدر یک کسی رو داماد کرد، دختر راضی نبود، پدر یک کسی رو پیشنهاد کرد، از خانواده خودشان یک کسی دیگر رو پیشنهاد داد، اما دختر او رو نمی خواست اگر دختر انکار بکنه که من نمیخوام، من اینو قبول نمیکنیم، نکا بسته نمیشود. نکار رده. در زبان نبی و صلی الله علیه و حدیث داخل صحیح بخاری هم داری، کتاب نکار. شخص اما دختر پیش رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم گفتن یا رسول الله پدر امانو بازور نکاح کرده حبود نکاح تو بسته نشده نکاح رو فسخ کرده پس فس اگر پدر بازور عقد بکنه شرطی که دختر انکار بکنه سکوت نه انکار که من قبول نمی کنم نکاح بسته نمی اما اگر پدر نکار ب... کسی خاصداری اما پدر قبولش کر نکاح رو بسته و دختر سکوت کر یا گریه کر نکاح منعقید می